چی مودم روی کبرام نانی بیشی کی بودم نانی بیشی چی میخوستم چی میگفتم کی بودم کبرامو بپوشونی پا گل خاط صاد بودم نانی که چرا دشمن زندگی بودم I'm huh? not вицы на ешеры нашу